هزار افسان برنامه از گروه جوان و فرهنگ نام خدا آن یگان سرایندهٔ افسانه و حقیقت سلام و درود بر شما فرهنگ دوستان و عاشقان ادب و فرهنگ فارسی ها در ظاهر حکایت‌های ساده کم آن ولی از نظر اجتماعی بسیار آمیخته با زندگی روزمره مردمان. امشب افسانه رو از مردمان استان فارس براتون نقل می‌کنم به نام افسانه دختر نارنج و ترنج بر گرفته از کتاب قصه‌های مردم فارس به گردآوری ابوالقاسم فقیری که امیدوارم از شنیدن این افسانه لذت ببریم. روزی روزگاری در شهر زیبای شیراز جوونی به همراه مادرش در روستایی زندگی می روزی از روزا مادر مقداری کلوچه پخت و به پسرش داد و گفت پسرم بیا و این کلوچه ها رو برای بیوی بزرگت ببر احوالش رو هم بپرس مدت هاست که ازش بیخبر پسر چشمی گفت و کلوچه ها رو از مادر گرفت و به راه افتاد از چند روستا گذشت تا اینکه به روستای بیبی بی بی بزرگ رسید بیبی بی بزرگ از دیدن نوش خیلی خوشحال شد و گفت خوش اومدی پسرم الهی خورمونت برم دعا میکنم دختر نارنج و ترنج نصیبت بشه پسر با شنیدن این حرف از بیبی بی بی بزرگ پرسید بیبی این دختر نارنج و ترنج که میگی کجاست؟ چطوری میتونم اونو به دست بیارم؟ بیبی بی بی بزرگ گفت پسر جان این حرف رو نشنیده بگیر پسر با تعجب پرسید چرا؟ چرا بیبی بی جون؟ چرا؟ شما خودتون گفتین برام دعا میکنی که دختر نارنج و ترنج بیبی بی بی بزرگ حرف پسر رو قطع کرد و گفت من حالا یه چیزی گفتم دیگه اما پسر دست بردار نبود و اصرار داشت که بیبی بی بزرگ نشونه ای از دختر نارنج و ترنج به اون بده. بیبی بی بزرگ که دید نوش دست بردار نیست گفت بزرچون دست رسی به دختر نارنج و ترنج کار آسونی نیست. هر کسی نمیتونه. پسر به تندی پرید وسط حرف بیبی بی بی بزرگ و گفت من میتونم. من میتونم. من میتونم. می بیبی بی بزرگ که دید فایده ای نداره و پسر دست بردار نیست گفت در ده فرسخیه این محل یه باغه که پر از درخت نارنجه نگهبان این باغ هم یه دیوه که چشم دیدن آدمی و نداره حالا خودت. ولی ولی از من پیر زن دنیا دیده میشنوی میگم از خیال دختر دارنج تو ترنج بیا بیرون چون واقعا کار سختیه پسر خندیده گفت بیبی <تصفيق> بی جون تو منو دست کم گرفتی فقط فقط بگو اگه بخوام برم اونجا باید چیکار کنم راه و چاری کار چیه همین با خودم بیبی بی بی بزرگ گفت تو باید یه خورجین بزرگ یه مش سوزن یه قالب صابون، یه مشک آب یه مقداری نمک یه قیچی چوبی و یه اسب برداری و بری به اون باغ پر از نارنج پسر اون چرا که بیبی بزرگ گفته بود آماده کرد و به طرف باغ به راه افتاد رفت و رفت و رفت تا به باغ پر از نارنج رسید پسر به باغ نارنج كه رسید آروم و با احتیاط وارد باغ شد و از پشر و گوشهی بست و جلوتر رفت باز هم جلوتر رفت و دیوی رو دید که زیر سایهٔ یکی از درختهای نارنج خوابیده پیر هم بالا بالای سر دیو نشسته و در حال پروندن مگسهای اطراف دیوه پسر بدون توجه به اونها چوبی رو از روی زمین برداشت و شروع کرد به انداختن نارنچ از درخت در این موقع پیرزن به صدا در اومد و گفت انداخت انداخت انداخت دیو با خواب آلودگی گفت چی انداخت پیرزن جواب داد چوب چوب چوب چی دیو با عصبانیت گفت خاموش، چوب که چوب رو نمیچینه مگس ها رو بزن پیرزن ساکت شد و به کار پروندن مگس ها ادامه داد پسر هم به چیدن نارنج ادامه داد حالا شش تا نارنج رو چیده بود اما نارنج هفتومی رو با دست چید این بار پیرزن گفت چید چید دیو با همون حالت خوالودگی گفت چی چی پیرزن جواب داد دست دست چی دست چی؟ دیو با شنیدن این حرف از جا پرید و به طرف پسر خیس برداشت پسر تون تند نارنجا رو توی خورجینش ریخت و فوری سوار اسب شد و به سرعت دور شد پسر سوار بر اسب تاخت و تاخت و وقتی که به پشت سرش نگاه کرد دید که وای وای وای دیف داره بهش نزدیک میشه. فورا یه مشت سوزنی رو که به داشت ریخ روی زمین. اما دیف به هر جون کندنی بود از روی سوزنها با پاهای خونین و مالین گذشت و به پسر نزدیک تر شد. پسر که دید دیو با اون فاصله چندانی نداره این بار نمک هایی رو که داشتید روی زمین ولی این بار هم دیو ناول کنن از نمک ها گذشت و در حالی که به پسر نزدیک و نزدیکتر میشد میشد، صداش کنن رو بلند کرد و گفت نمیتونی از چنگ من در بری هیچ آدمی زادی تا نتونست از دست من فرار کنه به به پشت سرش نگاه کرد و دیو رو در چند قدمی خودش دید این بار یه قالب صابونی رو که توی خورجینش داشت روی زمین انداخت و یه قالب صابون به از صابون تبدیل شد دیو نفس زنان از کوه بالا رفت و از طرف دیگه به پایین سر خورد و در نهایت تونست از کوه ها هم گذر کنه دیو با عصبانیت گفت اه اه اگه دستم بهت برسه که میرسه چونان بلایی به سرت بیارم که دیگه حواس چیدن نارنج به سرت نزنه آدمی زاد بیچاره نسلیک و بعد به پسر نزدیک و نزدیکدر شد پسر همچنان سوار بر اسب میتاخت و پیش میرفت الان دیگه دیف حسابی بهش نزدیک شده بود پسر فوراً مشک آب رو پشت سرش خالی کرد و دریایی خروشان پیدا شد حالا دیف این ور دریاست و پسر اون ور دریا در این موقع دیف گفت آهای آدمی زاد بیچاره با تو هم خوب گوش بده ببین چی میگم من به دریا میزنم اگه دیدی آب دریا خونه آلود شد بدون که من مردم اگه هم روی آب دریا کف دیدی بدون که من زندم و به تو میرسم و تو اگه لغمه خامت میکنم پسر لحظه از حرکتی استاد تا ببینه چی میشه دیو خودش رو به دریا زد، زیرا آب رفت، پسر هم یه مقداری کف روی دریا دید و یکمی هم ناراحت شد ولی یه دفعه دریا خونه لود شد، پسر یکمی خوشحال شد، سوار بر اسبش به دور ها تاخت، رفت و رفت و رفت تا به دامن یک رسید اونجا نشست و کمی استراحت کنه و در این لحظه حوز کرد یکی از نارنج هایی رو که چیده پوست بکنه و بخوره به محض پوست کندن نارنج دختری از نارنج بیرون اومد مثل ماه شب چهارده زیبا و معصوم دختر به پسر گفت این تخت کی؟ این رخت کی؟ این بخت کی؟ پسر که حرفای بیبی بی بی بزرگ رو فراموش کرده بود همینجور مون که چه جوابی به دختر بده به همین خاطر در جواب دختر گفت این تخت من این رخت من این بخت من ولی یه دفعه دید که دختر افتاد و مرد انگار که سال هاست مرده پسر با دست پاچگی دومین نارنج رو پوست گرفت و این بار هم همین اتفاق افتاد پسر به همین ترتیب شش نارنج رو پوست کند و دخترها افتادن و مردن تا اینکه نوبت به هفتمین نارنج رسید همون نارنجی که پسر با دست اونو از درخت چیده بود از توی اون نارنج هم یه دختر زیبا مثل ماه شب چهارده بیرون اومد دختر به پسر گفت این تخت کی؟ این رخت کی؟ این بخت کی؟ پسر این بار جواب داد این تخت تو این یخ تو این بخت تو و با کمال تعجب دید که دختر نه افتاد و نه مو پسر با خوشحالی از دختر خواست تا به چشمه ای که نزدیک آبادیشون بود برن و آبی بنوشن و استراحتی بکنن دخترم قبول کرد و را افتادن به طرف چشمه بعد از نوشیدن آب پسر به دختر جوان گفت اینجا آبادی ماست. تو همینجا تا من برم مادر و اقوامم رو بیرم اینجا. دختر لبخندی زد و گفت باشه همینجا میمونم و کمی استراحت میکنم تا تو برگردی. پسر به طرف آبادیشون راه افتاد. چند دقیقه بعد دختر سیاهی که به اون دد سیاه میگفتن و توی خونه یکی از بزرگان آبادی کار میکرد برای بردن آب سر چشمه اومد. دده با دیدن دختر جوون از اون پرسید تو چی هستی؟ اینجا چی کار میکنی؟ ها؟ دختر جوون هم از روی سادگی همه ماجرای زندگیش رو برای دده سیا تعریف کرد اینجا بود که دده به فکر افتاد که دختر جوون رو از بین ببره و خودش به جای اون بنشینه و همین کار رو هم کرد دده سیا سنگی پیدا کرد و اونو محکم کوبید به سر دختر ویچره و دختر نخش زمین شد و از بین رفت. اما اما تو نگو که یک قطر خون از سر دختر لب چشم چکید که بعدها به جای اون بوت گلی زیبا و خوشبو رویید و سبز شد دده بعد از کشتن دختر جوان لباس های اون رو و جای اون نشست. کمی که گذشت صدای ساز و نقاره از دور به گوش رسید. دده خوب که نگاه کرد دید اده از دور به طرفش میان. جلوتر که اومدن پسر بود و اقوامش. دده پیش دستی کرد و گفت چرا انگه دیر اومدی؟ سوختن توی این آفتاب. پسر با تعجب نگاهی به دد سیا انداخت و گفت تو تو تو چرا اینقدر سیاه شدی ها دد سیا در حالی که خودش رو باد میزد گفت آه با جرم خب معلومه دیگه از بس توی آفتاب منتظر تو موندم پوستم سوخته آخ آخه پوست من خیلی حساسه خیلی پسر حرف دد سیا رو باور نکرد اما با این حال همه هفت شبانه روز ساز و نقاره زدند و پسر با دد سیاه ازدواج کرد. ولی هنوز نمیتونست باور کنه که این دختر سیاه و زشت همون دختریه که از داخل نارنج بیرون اومد. براتون بگم که مدتی گذشت. بوت گلی که کنار چشم سب شده بود روز به روز پر برگوبارتر و تنومنتر می شد تا اینکه روزی از روزها یکی از اهالی آبادی شاخی از درخت رو برید و اونو به نجار آبادی داد که چیزی براش بسازه پیرزنی که همسایه نجار بود خورده چوبها رو جمع کرد و به خونش برد که اونا رو بسوزونه در غیاب پیرزن روزی خرده چوبها به صورت دختر نارنج و ترنج در دختر کارای خونه پیرزن رو انجام میداد. پیرزن وقتی به خونش اومد دید همه جا تمینگز و مرتبه تعجب کرد که یعنیش کی اومده و خونش رو مرتب و تمیز کرده خیلی عجیبه خلاصه فردای اون روز هم وقتی پیرزن برای انجام دادن کاری بیرون رفت دختر نارنج تورن شروع کرد به مرتب کردن خونه پیرزن این بار هم پیرزن وقتی به خونش برگشت دید که همه چیز مرتب و تمیزه با خودش گفت حتما رازی در این کاره باید بفهمم چه خبر و که میاد خونه منو تمیز و مرتب میکنم پردهای اون روز پیرزن در گوشه از اتاق قایم شد و منتظر پیرزن همینطور به انتظار نشسته بود که ببینه کی میاد و کاراشو انجام میده و در این موقع دید خورده چوب ها یه جا جمع شدن و از میون اونها دختری زیبا مثل ماه شب چارده بیرون اومد و شروع کرد به مرتب و تمیز کردن خونه پیرزن فورا از مخفیگاهش بیرون اومد و دست دختر رو گرفت و گفت تو چی هستی و اینجا چیکار کار میکنی هم؟ دختر که هر شده بود با دست با چکی گفت من، من، من نارنج من، من دختر نارنج و ترنجم و بعد هم تمام ماجرای زندگیش رو برای پیرزن تعریف کرد پیرزن که مهر دختر به دلش نشسته بود با مهربونی به دختر گفت حسن نخور دختر جان خدا بزاری از حالا به بعد تو دختر خودم میشی و با من زندگی میکنی دختر از این حرف پیرزن خوشحال شد و از اون به بعد در کنار پیرزن به زندگیش ادامه داد اما اما بشنوید از پسر جوان و دده پسر که هنوز به دد سیا مشکوک بود مقداری مهره آورد و به دهشتبان آبادی گفت که روگ بوم خونه ها جار بزنه که همه دخترهای آبادی برای بند کردن مهره توی خونه اونها جمع بشن دختر نارنج و ترنج هم در بین اونها حضور داشت در عرض یک ساعت تمام دخترای آبادی توی خونه پسر جمع شدن. پسر به اونها گفت از شما میخوام در حین بند کردن مهره ها هر کدومتون یک قصه تعریف کنیم اون وقت به بهترین و زیباترین قصه پادش خوبی میدم هر کدوم از دخترها قصه ای تعریف کرد. اما هیچ کدوم برای پسر جالب و شنیدنی نبودن تا اینکه نوبت به دختر نارنج و ترنج رسید اون قصه زندگیش رو برای پسر و حاضران تعریف کرد پسر به محض شنیدن قصه زندگی دختر فهمید که بله این همون دختر نارنج و ترنجه همون کسی که قرار بوده با اون ازدواج کنه بنابراین فورا دلسیه رو به سزای اعمالش رسوند مردم آبادی هفت شبان رو ساز نغاره زدند و پسر با دختر نارنج و ترنج ازدواج کرد افسانه ایرانی دختر نارنج و ترنج رو از مردمان خونگرم استان فارس نقل کردم. بر از کتاب رسه های مردم فارس به گردآوری ابوالقاسم فقیری افسانه ها بیانگر بخشی از رؤیاها و تصورات انسان های پیشین بودند که باید گردآوری و ضبط و ثبت بشن. ضرورت این امر فرهنگی رو دریابیم و چینینه ادبیات آمیانه رو که ها بخشی از اون به شمار می پاس بداریم هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت صالح پور ویراستار سهرلا کریمی اجرا مهران دوستی صدابردار علیرضا شاه صفی تهیه کننده زهرا عبدالله زاده سا دیگر پیدرو.